14 عادت ضد تنبلی اولویت بندی با روش ابجده بهانه که از میان میرود احساس استیصال میکنم و بیش از حد کار بر سرم ریخته است هر چند خود من با استفاده از نظام میم تف تجربه عالی داشتم اما این را هم میدانم که بسیاری از مردم آن را بیش از حد دست و پاگیر و محدود کننده میدانند اغلب اوقات ما روزهایمان را حداقل با یک دو جین کار شروع میکنیم و در چنین حالتی تمرکز بر تنها سه فعالیت اصلی برایمان محدود کننده است اگر شما هم با این عبارت موافق هستید بهتر از کارهایتان را با روش ابجدی اولویت بندی کنید ما در فصل مربوط به قانون 80-20 از اهمیت شناخت فعالیت هایی گفتیم که بیشترین تاثیر را بر زندگی حرفه ای و شخصی شما دارند در نظام میم هم از تمرکز بر روی سه فعالیت و تکمیل آنها در هر روز سخن گفتیم. اما تفاوت روش ابجده در این است که شما در این روش یک نظام رتبه بندی برای فهرست فعالیتهایتان تهیه می کنید و به صورت نظاممند به بررسی آنها می‌پردازید. از آنجا که احتمالا شما با فهرست بلند بالایی از فعالیتها روبرو هستید، این روش به دردتان می‌خورد. فعالیت الف همان کارهای لازم هستند که هر روز باید انجام شوند. اینها به مانند فعالیت های میمتفه هستند، زیرا که جدی و مهمند و انجام ندادنشان پیامدهای منفی به دنبال دارد. فعالیت های به هم مهم هستند، اما اجرایشان به قدر فعالیت الف ضرورت ندارد و تنها در صورتی که فعالیت های الف پایان یافته باشند میتوانند آغاز شوند. انجام فعالیت های جیم هم خوب و مفید است، اما انجام ندادنشان هم تاثیر منفی خاصی بر زندگی شما ندارد. انجام فعالیت دال را باید به دیگران واگذار کرد. هرچند این موارد هم مهم هستند، اما نیازی به توجه و کار مستقیم شما ندارند. فعالیت های باید حذف شوند. اینجاست که قانون هشتاد بیست تاثیرگذاری خود را نشان می دهد. اگر طی برنامه مرور هفتگی یا ماهانه ماهانهتان متوجه شدید که انجام فعالیت خاصی بیسمر است باید آن را از زندگیتان حذف کنید. ما اغلب کارهایمان را به دلیل حس استیصال حاصل از حجم انبوه آنها به تعویق می اندازیم. اما شما با اولویت بندی فهرست هایتان کشف خواهید کرد که انجام کدام کار روزانه به راستی مهم است حالا اگر یکی از موارد فهرستتان را دائما به تعویق بیاندازید این امر میتواند نشانه آن باشد که این فعالیت باید حذف شود و در آخر، اهمیت عادت روزانه را از نبرید ممکن است انجام فعالیت خاصی به نظر فوری و استراری نیاید اما باز هم در موفقیت بلند مدت شما اهمیت بسیاری دارد. مطمئن شوید که چون این فعالیت هایی را هم در فهرست کارهای روزانه‌تان می‌گنجانید. به عنوان مثال، عادت نوشتن روزانه من هرگز حالتی فوری و فوتی ندارد. اما به هر حال من آن را در دسته علف فعالیت هایم بندی زیرا که این عادت شالوده و بنیان تمام آنچه تجارت الکترونیک خود به آورده ام است. من هیچ وقت در جدول برنامه هایم به دنبال زمانی برای نوشتن نمی گردم. بلکه با در اولویت قرار دادن این عادت هر روز برایش زمان می سازم. اجرای این عادت روش ابجدی زمانی به حد اکثر خود میرسد که طی عادتی روزانه انجام شود. در اینجا به ساده ترین راه شکل دادن این عادت اشاره می شود. 1. هر شب پنج دقیقه زمان برای اولویت بندی کارهایتان کنار بگذارید. می توانید این کار را پس از بررسی کردن پیگیری و ثبت موفقیت انجام دهید. 2. به پروژه هایتان نگاهی بیاندازی تا بدانید کدامشان باید در روز آینده تکمیل شوند. 3. فعالیت هایتان را یادداشت کنید و بنابر اولویت هر یک از حروف علف به جیم داله را کنار آنها یادداشت کنید. 4. فعالیت هایتان را روی برگه کاغذ جدیدی طبق حروف علف که به وسیله آنها رتب بندیشان کرده اید از علف تاه یادداشت یادداشت کنید. پنج، روز بعد را با انجام فعالیت الف آغاز کنید و تنها وقتی این فعالیت ها کامل شدند به سراغ فعالیت های بی بروید. در مورد سایر فعالیت ها هم به همین ترتیب عمل کنید. شش، طی برنامه مرور ماهانه این فعالیت ها را دوباره بررسی کنید تا مطمئن شوید که فعالیت هایی که باید حذف یا به شخص دیگری واگذار شوند را انجام نمی دهید. ما اولویت های گوناگونی برای انجام کارهایمان داریم. نکته مهم آن است که نظامی برای مشخص کردن مهمترین کارهای برنامه روزانه روزانهمان پیاده کنیم. با استفاده از شیوه ابجده شما فهرست واضح و روشنی از کارهایی که باید انجام دهید و همچنین ترتیب انجامشان در دست خواهید داشت.